اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم والمرسلات عرفا به نام خداوند بخشنده بخشایشگر سوگند به فرشتگانی که پی در پی فرستاده میشوند الصلعاصفات عصفا و آنها که همچون تند باد حرکت می کنند و نشرا و سوگند به آنها که عبرها را می گسترانند فالفارقات فرقا و آنها که جدا می کنند فالملقیات و سوگند به آنها که آیات بیدارگر الهی را به انبیاء القا نمایند عذرا او نذرا برای اتمام حجت یا برای انذار اینما توعدون لواقع که آنچه به شما در قیامت وعده داده می شود یقینا واقع است فا فاذا نجوم در آن هنگام که ستارگان محو تاریک شوند و اذا السماء فرجت و کرات آسمان از هم بشکافند و اید الجبان نصفت. و در آن زمان که کوها از جا کنده شوند و اید روسون و در آن هنگام که برای پیام بران به منظور ادای شهادت تعیین وقت شود لی یوم اجیلت این امر برای چه روزی به تأخیر افتاده يوم الفصل. برای روز جدایی و ما ادراك ما يوم الفصل تو چه میدانی روز جدایی چیست ويل يوم اذ لل مكذبين وایل آن روز بر تکذیب کنندگان الم نهلك الاولين آیا ما اقوام نخستین را حلاک نکردیم سپس دیگر مجرمان را به دنبال آنها میفرستیم کلی اینگونه با مجرمان رفتار می کنیم وای در آن روز بر تکذیب کنندگان علم نخل مهين. آیا شما را از آبی پست و ناچیز نیافریدیم؟ فی قرار مكين. سپس آن را در قرارگاهی محفوظ و آماده قرار دادیم معلوم تا مدتی معین ما قدرت بر این کار داشتیم پس ما قدرتمند خوبی هستیم. وای در آن روز بر تکذیب کنندگان. علم الارض آیا زمین را مرکز اجتماع ها قرار ندادیم؟ احیا و امواتا هم در حال حیاتشان و هم مرگشان وجفیها روسیاشم میخوادیم و اسقای نکند و اسقای نک م و در آن کوه استوار بلندی قرار دادیم و آبی را به شما نوشاندیم وایلویی او معین للمکبن در آن روز بر تکذیب کنندگان الى ما كنتم به در آن روز به آنها گفته می شود بیدرنگ به سوی همان چیزی که پیوست آنها تکذیب می کردید بروید انطلقو الى بروید به سوی سایه سشاخه دودهای خفقانبار و آتش زا لا ظلیل ولا سایه ای ولا يغني من نه آرام بخش است و نه از شعله های آتش جلوگیری میکند اینها ترمی بشرر كالقصر شراره هایی از خود پرتاب میکند مانند یک کاخ كانه صفر گویی همچون شطوران زرد رنگی هستند که به هر سو پراکنده میشوند یا وای در آن روز بر تکذیب کنندگان لا امروز روزی است که سخن نمیگویند ولای و به آنها اجازه داده نمی شود که عذر خواهی کنند ويل يوم اذ وای در آن روز بر تکذیب کنندگان هذا يوم الفصل جمعناكم والأولین و به آنها گفته میشود امروز همان روز جدایی است که شما و پیشینیان را در آن جمع کرده این فان فا کان لكم كید فکیدون. اگر چهارهای در برابر من دارید انجام دهید وای در آن روز بر تکذیب کنندگان این در آن روز پرهیزگاران در سایه های درختان بهشتی و در میان چشمه ها قرار دارند و سوکی و میوههایی از آنچه مایل باشند بما بخورید و بنوشید گوارا اینها در برابر اعمالیست است که انجام میدادید این نهکلی نجزی المحسنین ما این گونه نیکوکاران را پاداش می دهیم ویلون یوم ایذی وای روز بر تکذیب کنندگان. کن و تمتعو قلیلا اینکم مجرمون و به مجرمان بگو بخورید و بهره گیرید در این مدت کم چرا که شما مجرمید وایل وی یومئذل المكدبين. وای در آن روز بر تکذیب کنندگان. و اذا قیل له مرکع لا یركعون. و هنگامی که به آنها گفت شود رکو کنید رکو نمی کنند. وایل وی یومئذل المكدبين. وای در آن روز بر تکذیب کنندگان. فبئي حديث بعده و اگر آنها به این قرآن ایمان نمی آورند پس به کدام سخن بعد از آن ایمان می آورند؟